شب خیالنگیز هست در آخرین شب پاییز به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمندی که در هر گوشه جهان در این وقت شب بیدار هستند به همه ایرانیانی که شب چله یا شب یلدارو جشن میگیرند به همه آنهایی که این سنت پایداری و سنت استقامت رو نگه داشتند و در برابر تمام زد ایرانی ها با این ابزار و با این جنگ افزار ایستادند شاد میگویم یلدا از کجا آمده؟ چرا یلدا میگویند؟ یلدا یعنی چه؟ شاید در این چهار پنج روزه بیش از ده 20 بار نام یلدا رو شنیده باشید یلدا به زبان سوریانی به معنای زادن و تولده ده چون خود زبان سوریانی یک زبان سمیتیکه و در زبان سمیتیک مثل ابری مثل تازی مثل سوریانی و آسوری تمام اینها ریشه یلدا از اونجا آمده از ولادت هم آمده از تولد هم آمده میبینی تازیان تولد میگن سوریانی ها یلدا میگن زمنان این رو هم بگم بسیار دیده شده که میگن زبان سریانی زبان سریانی نیست زبان سوریانیه و این واجه از اون قسمت گرفته حالا چرا ایرانی هایی رو میگن برای اینکه در پهنه بیکرانی که در زبان در کشور ما هست این مثلی که باید این هندوانه هم جلو میذاشتن یه خود از دوربین دوره پهلی سپاس گذارم در پهنه گسترده ایران که از تبت شروع میشد از مرز تبت تا کرانه های دریای مدیترانه زبانهای گوناگونی در ایران گفته می‌شد، یکی‌شون زبان سوریانی بود. و این واژه از اونجا بود. بنابراین روشن شد که میگن شب یلدا. برخی بر این باورن که خب شب یلدا همون شب زایش مسیح دیگه. برای اینکه سه روز، چهار روز دیگه زایش مسیحه. بله. از دیدگاه واژه اگر نگاه کنیم شب زایش مسیحه. اما ما دو مسیح در جهان داریم مشکل یا به قول معروف زیبا ترین نقطه کار اینجاست در بررسی هایی که شده استادانی مانند زبیه بهروز، حاشم وزی و مردان دیگری در خارج دانشورانی مثل فرانس کومون و غیره اینهای بررسی هایی که کردن به باور مهریان که پرداختند دیدن که مهریان بر این باور هستند و بودند که آناهیتا فرشته باران که دوشیزهی دست نخورده بود در روز آدینه ای که پنجم برابر بوده با پنجم فروردین ماه به وقت کنونی ما به تقویم کنونی ما یا بیست و پنجم مارچ در دریاچه کیانسیه که این نام نام حخامنشیشه نام امروزیش حامونه در سیستان این در دریاچه شنا میکرده البته یه باوره دارم میگم و نطفهی که فر زرتوش در اونجای داشته در زهدان اونجای میگیره و این باردار و بارور میشه و دویست هفتاد روز بعد در یک کم دیماه پسری میزاد به نام میترا یا بهتر بگیم فرزندی میزاد به نام میترا چون بسیاری از میترایی ها بر این باور هستند که میترا دو جنسه بوده برخی میگن میترا زن بوده به همین دلیل دختر دخترها رو میترا میذارن ولی بیشتر بر این باورن که میترا مرد بوده به خصوص در اون جایی که میگن گاو رو وقتی میکشه گاو رو به دوش میکشه و میبره این از توانه یک زن بیرونه بر این پایه این کیش رو این کیش میتراییست که بعد جهانگیر شد که حالا راه های جهانگیریش هم بهتون میگم این از مرزهای های ایران گذشت در جنگهایی که میان ایران و یونان و یا ایران و روم شد کیش مهر رفت و نشت کرد در اروپا و در فاصله 100 صد, صد سال سراسر روم و امپراتوری روم یونان رو، بخش بزرگی از آلمان رو و بخشی از اسپانیا و حتی شمال آفریقا رو گرفت و هنوز هر سال آتشکده ها و مهرابه هایی و مربطه آتشکده مربوطی به زرتشتیان همیهنان زرتشتیه مهرابه هایی در سراسر جهان در اروپایه در جهان اروپا و آفریقا و انگلستان و اون بخش ها کشف میشه و نشون میده که این کیش چقدر نفوذ داشته حالا فعلا کیش مهر رو میذاریم کنار در یکم دیماه که 2 دوم یا 23ام دسامبر بوده این کودک چشم به جهان می‌گشید باز اونطور که استاد ذبیح بهروز و هاشم رضی و پژوشگردان دیگه میگن این جوان در 25 سالگی کیش مهر رو زنده میکنه کیشهور پیش از زارتش بود. ایرانی ها به مرک خدای خورشید میدونستنش بق میترا میگفتن که بق در زبان با پارسی باستان به معنای خداوند بق میترا یعنی میتر خدای خدایگونه ولی اون در ذهن مردم بوده. بعد زارتش که آمد چون نمیتونست با باور همه مردم به جنگ مثل همه پیامبران پیامبرانی که می اومدن با باور مردم نمیتونستن به جنگن بگه محمد توانست که کعبه خراب کنه بود خانه بود برای تازیان دوران جاهلیت همون رو تبدیل کرد به خانه خدا و گفت الله اینه نیست اللهی الهی جز این الله همه پیغمبران نتوانستند با تمام باورهایی که با سلط و چیره بوده بر به اصطلاح اجتماع به جنگند زرتوشت هم دوچار همین مشکل بود توانست با همه مهری ها رو در رو بیسته این بود که مهر رو به عنوان فرشته نزدیک به اهورا مزدا تذیرفت در حقیقت معتقد بود که در آسمان دو خدا توانند زندگی کنند یکی از این خداها را که مهر نامیده میشد یا میتران نامیده می شد کشید پایین و جزء فرشتگان دست اول اهورامزدا قرار داشت. خب زمان گذشت بسیاری از باورها آرام آرام رنگ باخت بسیاری اضافه شد خود اوستا مهریشتی اومد جلو که همش راجع فرشته مهر بود و تایید از او زرتشت که در گذشت باور مهری دوباره رشد کرد جان گرفت اینجا بود که مهر آدمی چهره پیدا شد که همین داستانش رو برای گفتم از معتقد بودم که از فرشته آناهیتا ساده شد در 65 ساله گفتم که در گذشت به مهری ها که به آسمان رفت حالا این تشابه رو من همینطور برای میگم گفتم که از نوشته هایی که پیداست که من یکی دو نمونش اگر بتونم در این کتابم پیدا کنم براتون بخونم نشون میده که م... م... مسی یکی دو تا نبوده مسیح مس... هم... مسیح اصولا به معنی راهنما نما و رهاننده این هم سوریانیه و مهری ها بر این باور بودند که میترا رهاننده است مردم رو از خوشسالی از گمراهی از اینها می رحانند. و ایسا رو هم مسیحیان بر این باورند که رهاننده است حالا داستان این بر میخوره خوره به زمانیست که میترایستا تمام امر... اروپای جنوبی رو اروپای مرکزی رو گفتن حالا کیش مسیح ظاهر شده و این کیش آمده به امپراتوری روم و برخورد دو کیش یکی کیش نویی که آمده به نام ترسا یا مسیحی که ما مسیحی رو دیگه نمیگیم چون میترایستان میگن که میترا مسیح بوده و این برخوردهای عجیب خونینی رو در درازای 100 سال، پنجه سال تا 100 سال انجام داد تا بالاخره ترسایان پیروز شدند و مهری ها رو فروکو بیدن مهری ها رو فروکو ولی تمام باورهای مهری در کیش مسی زنده ماند کیش مر ظاهرا از میان رفت در اروپا ولی در اصل در درون کیش مسی جای خودش رو باز کرد و اومد و رفت رو به همین دلیل ما وقتی که نگاه میکنی میبینیم کلیسا بعد از مدت ها بعد از بیش از 100 سال گروهی میگن 30 سال گروهی میگن 70 سال تازه تولد مسیح رو اعلام کردن تا قبل از اون که تولد مسیح رو نمیدونستن که اینکه ولی اون موقع اون وقت آوردند و چسباندنش به نزدیکی کیش مهر و تولد میترا خب این باور میترایزم در ذهن ما ایرانی ها ریشه دوانید و از آن بعد ما شب یکم زمستان شب یکم دی رو جشن می گیریم چرا؟ برای اینکه بر این باورن که در نیم روز روز یکم دی میترا از مادر زاده شده به همین دلیل چون میترا در سیستان چشم جهان گشود از اون به بعد استان سیستان رو استان نیم روز برای اینکه که در نیم روز نخود روز سال میترا چشم جهان در اون استان گشود. نکته جالب اینه که میترایستا میگن که آناهیتا به هنگامی که میخواست کودک رو به دنیا بیاره دوچار درد شدید بود به قاری پناه برد و در اون غار بچه رو به دنیا برد و در اونجا چوبانها و روستایانی که میرفتن آمدن و دیدن یه بچه در قار از یه مادری متولد شده دقیقا این مسئله رو انتقال دادنش به مسیحیت و اونجا میگن مسیح بدون شو... مریم بدون شوهر باردار شده همونطور که آناهیتا بدون شوهر باردار شد مسیح در طبیله متولد شد اون در قار متولد شد اینها سه نفر مجوس و نمیدونم روستایان دیگه ای آمدن و اینو دیدن و براش هدایای بردن اونم همینطور روستایان و گاودار اینا گفتن اومدن رفتن شیر و اینها بردن برای اون بچه که تازه متولد شده ببینید چه جوری باورها در هم فرو می‌روند کیش مه هوادار رنگ سرخه برای این باوران مهریان که چون میترا نماد خورشیده و خورشید در درون خودش آتش داره بنابراین این آتش سرخ رنگه رنگ سرخ رو رنگ مقدسی می دوستن. و مسیحیت هم اومد این رنگ رو انتخاب کرد شما ببینید بابا نوئل همیشه لباسش قرمزه همین پوینست ها که میگن گیاه کریسمس این گیاه میتویسته برای که تمام برکاش سرخه و رنگ سرخ رنگ میترا بوده کاردینال های مسیحی همشون رخت سرخ پوشیدن و باور دیگه ایرانی ها اینه که به مبارکی و خجستگی زایش میترا از همون روز زایش روزی ساعت دو دقیقه بر درازای روز افزوده میشه و روزی دو دقیقه از درازای شب کم میشه و این فقط به خاطر خجستگی گام های میتراست که خدای آفتاب بوده نکته زریف دیگری که در کیش میترا هست این نیست که در کیش میترا دو آمل زندگی وجود داره که بر این باورن بدون این دو زندگی از جهان رخت بر و دقیقا درست هم میگن یکی خورشید و یکی باران آناهیتا فرشته باران و آبهای پاک میترا هم نماد خورشید و نگیر ازم شما فکر کنید اگر یکی از این دوتا نبود زندگی از جهان رخت بر ببینید در یک منطقه وقتی شش ماه هفت ماه ده ماه بارون نمیاد مردم وحشت زده میشه حال تصور کنید اگر یک مرتبه خورشیدی نباشه وقتی ایرانی ها میدیدند که با آمدن زمستان خورشید اندکدک دور میشه سرد میشه زندگی از میان میره درختها ها برکاشون میریزه حیوانات دیگه باردار نمیشن اینا ها میگفتن خب این سرما نماد اهریمنه به محصی که می میشد و خورشید نزدیک میشد و کشزارها پر از قلات میشدن درخت ها میوه میدادن جانوران باردار میشدن گفتن پس خورشید و گرما نماد احورامزا و میتراست این تجسم و به شبیه سازی و مانند سازی که البته در وجود بشر هست در کیش مر بسیار زیاد دیده میشه من از دوست درجمندم آقای امیر شهرتی خواهش میکنم اون بخش کوچیکی که راجع به شبه یلدا هست و بله اینو رو لط کنن بعد برمیگردیم دنبال سخن رو میگیریم لفظ یلدا اگر چه است، لفظ یلدا اگر چه سوریانیست شب مهرافرین ایرانی است به دری معنیش بود زادن زندگانی به دیگران دادن همچون تاریخ ما کهن سال است همچون تاریخ ما کهن سال است مهر و شادی و جذبه و حال است گفتم که رنگ سرخ، رنگ دلخواه میترایستا و رنگ دلخواه میترا و پوشش میترا بوده در این زمینه خیلی نکات رو میشه دقت کرد از جمله است که دستور دقیق گذاشته شده در کیش مهر و در شب یلدا که البته از همونجا گرفته شده که در میان میوه هایی که میگذارند حتما انار و هندوانه باش چرا؟ برای این که این دو میوه هست که زمانی که میرسند سرخ میشن هیچ میوه دیگه نیست که وقتی رسید سرخ بشه این دو میوه به هنگام رسایی سرخ میشن یعنی رنگ سرخ رو رنگ رسایی و تکامل دونستن البته حالا ممکنه ما گوجه فرنگی هم داشته باشیم سرخ رنگ بشه موقع که میرسه توت فرنگی داشته باشیم که سرخه میشه ولی اسمشون دنبالش فرنگی اومده در زمانی که ایرانی ها کیش اسرائییس رو داشتن از فرنگ چیزی نمی اومد اینجا، بنابراین این دو میوه نماد و سمبول رسائی بودن و نکته برجسته تر در این مسئله رسائی و رنگ سرخ غروب و طلوع آفتابه. خانم توران شهریاری در زمینه جالب گفته راجه به رنگ سرخ در کیش میترا میگه در طلوع و غروب رنگ سپر میشود سرخ رنگ مکتب مهر. صبح و شب چون سیاه خورد به سپید رنگ قرمز بیاورند پدید سرخ است زین نبرد و ستیز که در آین مه هست عزیز و واقعا رنگ سرخ در آین مه رنگ عرضشمند و عزیزی اما حالا چون به مسئله شب یلداب و آین میترایست بود زادن مه رو اینا سخن گفته شد یه نکته جالب دیگری هم من در اینجا بگم زمنان دوست عرضمند آقای امیر شهربتی اگر خط رو هم باز کنید گویا اینکه من فکر کنم وقت شب کسی بیدار باشه ولی با این همه پاسخ میدیم به پرسش‌هاشون اگر خواستم در کیش مهر برای رسیدن به پله‌های بالاتر در این کیش داوخواهان کسانی که می‌خواستند به اون بالاترین پله‌ها که مهربانی هست برسن یا به درجه مغ برسن که درباره همین دو واژه من سخن خواهم گفت شب. اینها ها باید هفت رو میگذروندن چون کیمه به علت دشمنی های زیادی که در درازهای تاریخ باش میشد و به علت احترامی که به قار داشتن چون بر این باور بودن که میترا در قار زاده شده به همین دلیل رازدار بودن یعنی رازداری یکی از پایه های کلی و دقیق و محکم کیش مهر برای پایه اونهایی که می آمدند و می خواستند دافخواه می شدند که وارد کیش مهر و پله های بالاتر برند و به تمام مسائل مهری آگاه باشند اینها اولین که پله که می پلهشون اسمش راز، اسمش کلاق بود برای اینکه هنوزم می در باور ما ایرانی ها کلاق رو میگن پرنده خبرچین یا مادرها به بچه میگن اگه فلان کار بکنین کلاغ خبرش رو بر من میاره در اون اولین که کلاغ بود به اینا یاد میدادن که چون کلاغ نباشن و دهانشون رو نگه دارن و در سنگ نبشته هایی هم که ما میبینیم از طرف خدای خورشید وقتی که برای مهر عرمقانی فرستاده میشه کلاغ میاره این رو میده در گوشه سنگ, سنگ، کند سنگ ها تصویر کلاخ هست بعد از اینکه این گروه یا فرد دافخاه از این پله گذشت از این خانه گذشت به پله بعدی که میخواست یه فاصله زمانی بود تو این فاصله زمانی اینها رو تازیانه میزدن در شگفت میشید که تو گوشه که کسی که میخواد بیاد تو کیش میر بره بالا چرا تازیانه میخوره برای اینکه که گفتم کیشمر کیش ارتشی بوده بنابراین با تازیانه اینها رو قدرت جسمیشون رو زیاد میکردم بعد زیر نظر کارشناسان خودشون اینها رو شستشو میدادم در حوضها و آبگیرهایی که ساخته بودم بعد اینها روی برف باید راه میرفتن اگر تابستان بود روی ریگ داغ راه میفتن همه اینها برای که به اینها قدرت اراده و نیروی روحی بدن بعد می بردن به پله دوم پله دوم پله راز بود اونجا تازه رازداری رو یاد اینها میدادن بعد دوباره وقتی تمام می شدد میآمدن اینها رو تازیانه می زدن شستشون همون کار رو میکردن و میرفتن پله سوم پله سوم پله, پله سرباز بود تمام آینهای سپاهیگری رو به اونها یاد می و گروهی بودن که بعد از اون دیگه نمی‌خواستن برن دنبال کنن اون چارپلی دیگر رو بنابراین اینها فقط در اون حد آموزش بهشون داده می و رازهایی رو بهشون می تا اون حد و می شدن سرباز میترا و کار خود شدن می و سربازانی بودن که هم روح نیرومند داشتن هم جسم نیرومند داشتن بعد دوباره اینا اگر میخواستن ادامه بدن تازیانه میخوردن شستشومید شدن همون رو میکردن میرفتن پله شیر چرا شیر؟ برای اینکه که مهریان برای این باور بودند که شیر در نهاد خودش آتش داره کشبختانم است که این وقت شب همه بیدارند چون تمام خطا پر شد و اون جانداری که در نهادش آتش مانند خود خورشید که در نهادش آتشه پاکه بر این پایه کسانی که از پله شیر تمام میشد کارشون می بالا نه تازیانه می خوردن نشسته شومی شده نمیدونم روی برفا می افتافتن میگفتن اینها آتش در نهادشونه یک انگشت اصل در دهانشون میذاشتن و میبردنشون به پله پنجم پله پارسا یا پارسی اونجا آین آدمیگریاتشون میدادن آین مهبانیاتشون میدادن آین گذشتیاتشون میدادن و این مسائل معنوی کیش رو یاد میدادن میرفتن پله دوباره تازیانه و مازیانه و همه رو میخوردن میرفتن پله خورشید، پله ششم. در پله خورشید که از نظر میترایستا نیر ازنه زندگی بخش جهانیانه زندگی بخش کهکشانه در همه جا فکر میکردن خورشید بزرگترین گردونه آسمانیه باز فارغ و تحصیلانش نه تازیانه میخوردن نه شستشون میدونن بگفتن خورشید در نهادش آتش و بعدم پله پیر که بالاترین پله بود و مورد احترام میترایستان پس از تاختن تازیان به ایران ایرانیان زرنگ ایرانیان باهوش ایرانیان، آگاه آمدن این دو پدیده پاکی رو یکی شیر یکی خورشید رو گذاشتن روی پرچمش ولی این پایه‌ میبینید پر شیر و خورشید که در روی پرچم نه این شاه نه اون شیخ نه این یکی نه اون یکی بلکه این ریشه در باور ایرانی داره برای که معتقد بودن در نهاد اینها آتشه با آتش پاکه و من در اون کتاب حافظ و کیشوهر نوشتم حافظ میگه ازان به دیر مقانم عزیز میدارن دیر مقان کجا بود؟ مرکز میترایستا بود ازان به دیر مقانم عزیز میدارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست یعنی معتقده هم میترایسته و هم به این دلیل زمین این را بگم بسیار بسیار دیده شده در فرهینامه ها در کتاب ها در جدول هایی که می نویسن می نویسن پیشوای کیش زرتشتی در بیاد موغ موغ پیشوای کیش مهریانه پیشوای کیش زرتشتی موبده و بزرگ موبدان میشه موب... موبد موبدان بزرگ موقان هم میشه پیر موقان بنابراین این دوتا رو با اکتیگر اشتباه نکید من یه چند تا تلفن رو پاسخ میدم برمیگردیم دنباله سخن رو میگیریم اروه فرمایید من سلام عزیز میکنم درود بر شما بخیر جناب امدنبان. درود بر شما ارمان ارمان این ایسایی رو که فرمید در قار به وجود اومده ایشون هم پیغمبر بود ایسا یا میترا میترا رو میفرمایید الو نه میترا میگید یا ایسا ایسا و منظور شما کو خب عیسی که پیغمبره عیسی که مسیحا پیغمبر میدوننش دیگه من میترا رو گفتم در قار به دنیا اومده عیسی که میگن در تویله به دنیا اومده فرمودید دو تا عیسی بله بله عیسی بله، داره بله، یکی بله. حضرت عیسی چرا که تو تویله اومده برن تو یا یکسان تو قار نه نه نه ببین اونی که حضرت عیسی است همونی که توی تویله به دنیا اومده خلاجه. اون یکی چی بود قربان اون یکی میتراست ایرانی ها به میترا میگن مسیح ما نمیگیم ایسا مسیح شما اجتماع این نینی عیسی. ایسا مسیح غیر از ایساست ایسا فقط یکی بوده اونم عیسای ناصری بوده که بهش مسیح میگن میترا هم یک نفر بوده که بهش میترا میگن و اون پیشوای کشه مهریان هست حالا جالب اینجاست هم مسیحیان و هم میترایسا به پیشوایانشون میگفتن مسیح یعنی رهاننده و جالبی نیست که میترایستا میگن ما میگن میترا رابطه بین خداوند و بندگانه بین آفریده و آفریده آفریننده و آفریده شده مسیحی ها میگن عیسی مدیتس رابطه بعد بله. توضیح کافی بود قربان جناب انقضایی سوالی چه داشتن یک فایلی که دستم قربان در مورد این مرکز سالان موزاری بود که هر گر یک ماه یکی از این روزا چوانی هم هر شد اونجا تشریف داشتی در اون حرب بله معود و یک تجمعی بود یک جشن بود بله و بود بله بله این دیگه اجران نمیشه والا انجمن زرتشتیان اونجا رو تحتیل کرد ما که اگه باز بود باز هم میرفتیم ولی دلایلی نمیدونم دلائل بود کرایه بوده، دلایل چی بوده، حیط مدیره تصمیم گرفته نشه. من هیچ خبر ندارم. ولی اگر بازشه بیریم و بسیارم جای خوبی بود. بره. خیلی سپاس گذارم. در ماه جایی چیز ندارید قربا؟ نه خیلی ندارم. الان ندارم. اگر باشه من در تلویزیون اعلام میکنم. ورم از... ورمنی پاسخ پاسخ بله پاسختون رو در همین مورد دو تا مسیح هم الان میدم ببینید زبی بهروز یکی از پژوهشگران بسیار بسیار جرفندیش ایرانی در کتاب خودش می‌نویسه به موجب نوشته های کوهن زمان زندگی مسیح مسلوب نشده ببینید ما دو تا مسیح داشتیم یکی به دارش زدن که عیسی ناصری بوده یکی مسیح مسلوب نشده است که معتقد بوده آقای زبیه بهروز و آقای هاشم رضی و بقیه پشوشکران کیشور که این میتراست به موجب نوشته های کوهن زمان زندگی مسیح مسلوب نشده برابر است با زمان سومین پادشاه سلوکی پس از اسکندر و آغاز زنجیره پادشاهی اشکانیا زایش و مرگ مهر یا مسیح به صلیب کشیده نشوده در 1454 65 سال پس از اسکندر و در سال 51 اشکا نیست در روز آدینه 50 بار این که دوباره همون که توضیح دادم به مادرش بشارت میرسه که تو باردار شدی فلان این برگه هایی است که از اونجا به دست ما رسید علاو بفرمایید دو... بر درود بر شما. درود تلویزیونتون یواش. کنید. بله بله. آیا این یه سوال کنم که راجبه سک ها اسکیتون اسکیتن اینم این من سوال کنم اینا ایرانی هستند ولی خیلی‌ها خیلی سعی میکنن که اینا رو ایرانی خطاب نکنن. نفت. بعد اقوام مختلف ایرانی هم میگن که اینا آریایی نیستند بله. اینو من خواستم رجبش یه توبایج که اگه موچنه ها بله. ایرانی هستند بله اینو بله. شما میتونیم می بیان بکنیم خیلی خواهش میشونم اولا هم ماد ها ایرانی ای چیزن آریان، هم خود اونایی که ما به نام آریا میگیم در وسط آمدن پارت ها رو تشکیل دادن و هم اسکیت ها یا سکا ها همه ایرانی هن. منطقه ما تا سالها و سالها و سالها پیش از آریاها در این پهنه باختری ایران بودن که همین آذربادگانی ها و کرت ها ما هستن که هنوز هم هستن. زمانی که اون تیره به اصطلاح آریا. آریای ببینید آریایی نجاده ولی چندین تیره داره تیره های مختلفشون هم آریان منطقه نام های دیگری دارن اینها وقتی در وسط میان یک شاخه ازشون جدا میشه میره در افغانستان باختری و ایان خاوری در محل کنونی همین سیستان که تا هم کشیده میشه اینجا ساکن میشن اینا همین سکه ها بودن بسیار نیرومند بودن بسیار قوی بودن بسیار جنگنده بودن و بارها و بارها هم با خود آریا هم جنگیدن و بعد زمان کوروش بود که آمدند و کوروش آمد همه رو که گرفت یک پارچه کرد دیگه آمدن داخل همون سرزمینی که باید باشن ماندند و در اینجا ساکن شدن بنابراین حتی در فردوسی هم در کتاب شاهنامه چندین بار به جنگیدن اینها اشاره میکنه که اینها به علیه ایران جنگیدن و اینکه تیرهایی بودن مثلا اینکه خب بالاخره ماتها هم به گهکا جنگیدند با پیرامونیانش زمانی که تیره آریایی و سکاها اومدن پایین به طرف هوای گرم ماد ها اسمشون ماد نبود که از اون به بعد اسم خودشون گذاشتن ماد ماد و مای و مایه و ماده همه اینا به معنی میانیه هنوز هم این لغت به زبان انگلیسی میدل میگن آلمانی میتل میگن فارسی میان میگن اینا رو میگن اینا معتقد بودن که ما میانی هستیم یعنی مادها رو میگفتن میانی هستیم و اینا رو میگفتن پرتوی یا پهلوی یا پهلوی که این پهلویی پهلوی اومده این نام مود برای اینا و یعنی بعدن که یکی شدن که دیمه در هم آمیختن و فرو رفتند الان بفرمایید درود بر شما بفرمایید درود بر شما می خواستم که آیم هنوزم از, هنوزم از مادیان کسی میترایز ها بله بله, بله. بله. اگه هستن، کجا هستم جمعا نفوز در اسلام می چیه بله درنامش. بسیار پرسش های جالبی بود بله هستن هم اکنون در لورستان گروه هستم که من اتباقا در همین کتابم نوشتم این به نام یارسان ها یارسان بهشون میگن و بسیاری از رفتار هایی که اینها دارند دقیقا کپی برداشته شده از کیش میتراییست سالهاشون رو تقسیماتش مثل همونه و با یک چیز میکن با ایرانی ها هم قشن با هم دیگه جوشیدن و اصلا منطقه به اونا علی علی اللهی هم به اینها میگن ولی اون اسم ساختگیس براشو گذاشتن من اصلا یک چیزی به خدمتون بگم کیش مهر واقعا اگه دقت بکنید دقیقا در اونجا در تمام آینهایی که بعد از خودش آمدند اثر گذاشته از همه بیشتر در مسیحیت گذاشته بعد در اسلام گذاشته شما ببینید گاف میترا یک تیره یک پیامبری یک پیشوایی که معتقد بودند میثریان که این با کشتن گاو روزی رسان باعث میشه روزی در سراسر کشور در سراسر جهان فراوان بشه به همین دلیل بهش میگن مسیح چون رهاننده است از ناخوشی ها و از بدی ها و ناراحتی ها بعد برای این باورند که اهریمن برای اینکه این گاو رو گوشتشو مسموم کنه حالا من بسیار بسیار فشرده دارم میگم این رو کشدم و خرچنگ و مار رو میفرستن که این رو نیش بزنن و این رو گوشتش رو زهراغین کنه باور میترایان سگ راهنمای نمای میترا میترا رو راهنمایی میکنه به درون قاری که اون گاو بوده و قبل از اینکه این گوشتش مصمون بشه میترا این گاو رو میکشه و معتقدن که روزی فرامان میشه خب، در اینجا لغت گاو رو و مسئله فراوانی بینید چطور شده یه دومین سوره قرآن بغره است؟ یعنی گاو از کجا اومده ای؟ میترایستا بالاترین مرجع زندگی رو خورشید میدونه من در این کتابم ده ها آیه آوردم از قرآن که خورشید رو پیغمبر بالاتر از هم میدونست اصلا یک ای به نام شمس داریم ما و بعد هم سلام میکنه صاحب بامداد به خرشید خب اینا از،, از کجا اومده؟ اینا از سر هم گفت اینا پیامبران ناگذیرن اون باورهای قبلی ها رو یه جایی بگنجونن در شریعت خودشون و بعد از اون میرسیم به مانوییان و مذکیان اونا و بعد شیعیان همراهان میترا دوازده تن بودن بهشون میگفتن یاره و همین دلیل هم از که این تیره های لورستانی که هران هستن یارسان بهشون میگن اونها دوازده تا بودن شیعه ها موردن دوازده امام درست کردن اونها معتقدند که که چیز میتران نمرده حالا من جمله ای رو که آقای دکتر مقدم نوشتن با اون نسل بسیار شیواشون که در شب آخر از دوازده نفر خدا نگهدار گفت و سوار گردونش شد و اون گردونش هم خرشید بیگردون رفت به آسمان ها مسیحی ها میگن ایسا رفت به آسمان ها شیعیان هم منتظرند که امام زمانی بیاد ببینید اینا اثرات یک ای این کیشه در این کیشای دیگر در کیش میترا آب و آتش مقدس بودند. برای که آب رو سمبولش رو آنا هیتا می دونستن. آتش رو سمبولش رو خورشید می دونستن. خب این آب و آتش در همه این کیشا ها اومده مقدس شده این سنگ هایی که دیلوی مسیح می چی بوده همه بوده شما یک نکته بگم در کیش میترا شستشو بسیار, بسیار بسیار واجب بوده به هر دلیلی شستشو بیدار اونهایی که سنشون بالاست در بالا سر در های قدیمی، های عمومی، دیده بودید که اون بالا عکس یک دو نفر میشن دور سرش نوره. امام اماماست، عکس امام. نه جون اون میتراست. برای چه گرمابه سمبل شستشوه جای شستشوه و کیشی که بیشتر از همه شستشو رو سفارش کرده، میثرا اون اونو گذاشتن. دلیلش هم خیلی روشنه. هر جا شما کنده سنگ میبینید. هر جا چه در اروپا چه در ایران از میترا کنده سنگ میبینید دور سرش پرتو خورشیده. دیگه پشتر کسی دیگه پرتو خورشید ما نمیبینیم ولی مسیحیت اومدن این دوتا پرتوه خرشیدو گذاشتن گرد سر ایسا و گرد سر مریم بعد ایرانی یاد گرفتم و همه دوازه امام این دایره پشترشون کشتم ولی این اصلش اینی شما تنها کنده سنگ و سنگ نوشته ای که می بینید که تصویری هستش و میتراه هست این دور سرش پرتو خورشید هست به همین دلیل حافظ میگه بند برقه بگوشا یعنی صورت تو نشون ما بده ای شاه خورشید کلا شاه خورشید کلا کیه بند برقه بگو شا ای شاه خورشید کلا تا و زلفت سر سودا زده در پاف کنم موهای میسا بسیار بلند بوده اینها رو زیر اون کلاه فریجیش کلاه فریجی لام من براتون توضیح بدم کلاهی بوده که بلند و پارچه‌ای بوده سرش هم چون پارچه بوده برمیگشته میافتاده دقیقاً همین کلاهی است که برای بابا نوئل میگه اون که باندتو باز کنیم مواد میرسه رو پات. من سرمم مثل موات بذارم روی پات که حافظ بهری بوده با. یا شعر دیگری داره که اگر خاطرم بیفته براتون میگم راجع به است که میگه من فدایی این آدم کافرم من اون کافر رو میپرستم کیون میگه؟ یا اون جایی که میگه هر که بر درد کشان خورده گرفت که همه خوندن درد کشان نه آقا درد که اون هفت هف پله بوده که میرفتن و تازیانه میخوردن میگه به اونات خورده نگیرید منم از اون دردکشان هستم همه چه خوندن دردکشان دردکشان دردکشان حالا به هر روی عراوه فرمایید بخواستم سوال بکنم قربان بفرمایید من در پیشگاه شما هستم پرسش کنید تل، تلویزیون توی یواش کنید قربان نه نه دارم یواش قربان بگرسید من از درست برنامه تماشا. این مطالبه که فرمودید خیلی خوبه من کجا چه کتابی میتونم پیدا بکنم با که والا من کتاب خودم رو نمیخوام تبلید کنم ولی من کتابی دارم به نام حافظ و کیش مهر برای اولین باره که من کیش مهر اولین کیش ایرانی رو به زبان خیلی ساده و دقیق همه رفتارها همه پندارها همه باورها شو آوردم و مقایسش کردم با همه دینهای دیگری که بوده و چیزهایی که دینهای دیگر ازش گرفتن. بعد. خواهش میکنم عربه فرمایید سلام. درود بر شما. آقا بفرستید شما از قوم مادها صحبت کردین. بله. صحبت کردین. اگه گوش اگه تلویزیونتون خاموش ناکرید قلطتون میکنم. اشاره ای میخواستم بکنم به شما اشاره به قوم ماد مادها کردین به کوردها اشاره نکردین. قانونا که حواستون پرت بوده بنده گفتم آذری ها و کرد ها من تعجب می کنم گوش نمی ما ایرانی ها یه عادتی داریم هم می حنا میشنویم اما گوش نمیدیم من مثلا تکیه کردم گفتم کرد ها و آذری ها مات هستن و اینها اولین کسانی بودن که بودن در اینجا alo بفرمایید سلام سرهنگ دکتر درود در شما خطه نباشید یه سال دارم خدمت شما جایگوزین شب یلدا یعنی کلمه یلدا یه کلمه دارین بله بله شب چله میگن بله چله در در چله ما خودمون خودم یادم یه یا این مسئله اما در برای قوم ماد یه نقطه هستش نمیزونم اطلاع داری خواستم حضورتون می‌کنم. امروز برگرفته از سکاکای همون قبلا نذکی که به روزمان تغییر کرده است یلدا نه خیر سکز از بر گرفته از نام سکاکهای آ بله اه ممکنه باشه هستش که امروز به سوئیس قد یا سقف تلفظ بشه بله کاملا درسته ممکنه خیلی از این لغات دگرگون شده اینم درسته خیلی ممنون خاطر مجدلا اینو خدمتتون عرض سپاس سپاسگزارم علو بفرمایید الو الو بفرمایید. دوباره دو... بای... صدای قطع و وصل میشه. الو؟ دو... دوباره. دو... ببین، صداتون قطع وصل میشه، دوباره لطفاً بگیرید. صداتون به یاد درست. دو... من... دو... دوباره قطع و وصل میشه. من نمیفهم چی میگه بله. این حالا یکی پرسید پیش از اینکه بیایم گفت آقا اصلاً ما به جای همطور که این هم همیهان گفتن به جای یلدایی که شما میگید سوریانیه نمیتونیم ریس فارسی بزنیم اولا زبان سوریانی زبان بیگانه‌ای نبود اون بخش عظیمی که سرزمین ایران رو دربرداشت سوریه کنونی هم جزء اون بود در اون سوریه کنونی که اون موقع ها بودن بخشی از سامی ها بودن زبان سوریانی رواج داشته ما زبانهای فراوانی در ایران داشتیم که اونا فارسی نبودن اما زبان ایرانی بودن ببینید ما خود، خوتنی داریم نمیدونم اردو داریم، پشتو داریم، بلوچی داریم، کردی داریم، لوری داریم اینا همه زبان های ایرانی هن. زبان مستدل نیستن گویش‌های های گوناگونی نه یکیش هم فارسی هست. و اینا زبان است که در این پهنه بزرگ ایران بهش گفتگو میشوند در هر پرسید چرا میگن آقا چله؟ خیلی روشنه ایرانی ها اصولا سرما رو حالا ما به هر حال شب اول زمستان درسته که باید راجع به یلدا همش گفت ولی خب به هر حال اینام جز یلدا حساب میشه ایرانی ها سرما رو نماد اهریمن میدونست. اسم تو که گفتم گفتن سرما قاتله سرما مرگافرینه. درخت ها رو خشک میکنه ها رو بعضی بیشترشون میکشه همه از این کار هست و و و تابستان رو نماد اهورا و زایندگی و زندگی و جنبش و جهش رو اینا می خیلی خوب. بنابراین می اومدن آمدن زمستان رو سه قسمت کردن. برای که خوردش کنن زودتر موشد. یکیش از یکم دیماه تا دهم ده بهمن. این چهل شب و چهل روزه. میگن چهلله بزرگ و دیگری از دهم ده بهمن تا یکم اسفند که 20 شب و 20 روزه میگن چهلله کوچک از اول اسفندم به بعد میگفتن دیگه پیشواز باحال یعنی آماده میکردن خودشون زودتر خلاص شد بنابراین این 60 روزی که سخت بوده به این صورت تمامش میکردن اما یک نکته اونه چرا ده همه بهمن رو میگن جشن صده شما که میگید چل روز گذاشته چطور شده صده شده یعنی صد برای اینکه ایرانیان کوهن سال رو دوبخش میکردن چون در نیم کره شمالی قرار داشتیم یک یکمه سال شیش هفت روز اضافه تره میدونید که شیش ماه اول سی و یک روزه این رو میگفتن هفت ماه باید باشید یعنی از یک یکمه فروردین بود تا آخر مهر و آغاز و انجام این هفت ماه رو گذاشته بودن دو جشن بزرگ یکی جشن نوروز یکی جشن مهرگان از اول عبان که به طرف سرما میرفتن اونجا رو روز حساب بیکردن سی روز عبانه سی روز آذر میشه شست روز سی روز دهه میشه 90 روز ده روزم بهمنه میشه صد روز به همین دلیمشه اون جشن صده پایه و ستون اصلی این جشن هم آتشه من گمال میکنم که این روشن شد اما یک نکته من یکی دوتر پاس پاسخ بدم میام خدمتتون رو فرمایید بفرمایید تلفن شما یه اشکالی داره دوست عزیز. تلفن شما اشکال داره. من هر چی می‌خوام بفهم صدای شما درست بیاد نمیاد. من نمی‌دونم رو عوض کنید، رو عوض کنید یه طوری باش که من در خدمتتون باشم. الو بفرمایید. قربانم خب آ... آقای دکتر ایموزا صحبت... من انقطا هستم. من هستم درود بر شما. قربان شما جانت سپاسگزارم مرسی. جام زکتر من یه سوال از خدمتون داشتم خواهش میکنم سوالها پیش که من در شیراز زندگی میکردم اطراف شیراز کوهای اطراف شیراز جاهای بود که جای دف یعنی پنج تا انگشت بود جای پا بود جای سوم عصب بود یه چیزای شبیه اینا روی چی؟ نه, بساطه... نه این جای پاها رو چی بود؟ از میکنم نه انگشت رو بود. چی, رو چی اثر گذاشته شده بود. یعنی س... منظور تو رو سنگ؟ بله بله. بله. خب بفرم پس چی هسته بله. چون بله. اهوام اون موقع می گفتن که اون دست دست نمیزنم حضرت فلان، بله بله. خدمتون میگم. خدمتتون. فلان من میگم. حالا. متوجه شدم، میبخشید به نظر من تمام اینها بیپای است محال اثر دست آدم رو سنگ بمونه مگر اینکه بیان کند سنگ کنن بکنن مثلا قدمگاه در ایران اونجا که نزدیک به مشهده یه سنگ مربر یه مامزایی درست کردن و نوندونی و پول بخورن و پول بگیرن اینا جایی پاس پاهم خیلی بزرگه این جایی پای حضرت رضاست بیخوده قابل قبوله ما پا اسید داره که سنگ رو آب کنه تا زدم سنگ رو آب نمیکنه بنابراین این چیزا رو باور نکنید اینا رو یا قبلا یه جورایی کندن و یه شکلی درست کرده برای که ناندانی برای خودشون پیدا کنم. از اتاق فرمان زنگ میزنان که یعنی اشاره میکنم که یه موزیکی آماده است من می نشینم موزیک رو با هم دیگه گوش میدیم برمیگردم در پیچگاه شما خواهم بود <متصف> چی شد آقای شورای احمد آزا بله من صوغان میگم موسیقی بعدی نبودید این خانم تو این سرما شبه اول دی سرما نخورن علاوه فرمایید حالا من انقطاع هستم درود بر شما. وعلیكم حالا شما چطوره؟ سپاسگزارم شما راجع به عیسی مسیح، فرزند مریم، بله. که ایشون در جایی به دنیا آمده که در در عقل به دنیا بله شما اینو از کجا میگی تمام تمام مسیحیت ها تمام کلیساها شما فردا برید یکی از این کلیساهای بزرگ لو... کجا تشریف دارید شما ما در بله برید از این کلیسای لوساینس دلس میبینید اصلا با مجسمه درست کردن اونجا توی جای کاه مانندی عیسی و مریمشونن سه چهار تا الاغ و اسب هست چهار پنج تا از این ای کلیسا هست. قرآنو مطالعه فرمودین؟ یا اینکه همینجوری از اینکه قرآن نیست. درست قربانو درست. قربانو قرآن, رو قرآن اصلا قرآن قرآن میگین یارو میگه. من کینه ندارم. من کلیسا رو دارم میام. کلیسا این نمیگه. ما قبول نداریم. توجه نمی اصلاً مثل شما یه خود حواستون پرته. شما میگید که عیسی از کجا تو تویله به دنیا آمد میگم همه کلیساهایی که پیرو عیسیان نوشتن به قرآن چه مربوطه تو قرآن میگه کجا به دنیا آمد؟ به قرآن نه نمیگه، اونا میگه از مریم به دنیا آمد حالا تازه به قرآن بگه با اونی که خود پیروانش دارن میگن میگن او من قرآن رو قبول ندارم که در یه این یعنی چه حرفی دارم سوره مریم هستش آیه 22 تا 23 شو. بله این ارائه به فامیلی بخش مالیاتی است. شی روششی است. اجازه بدید. اصلا میتونیم که سی تویش کجا دو نیوپی اندن ویشی. ممکن است شما خواهش شما میکنن. کنم ممکن است. ممکن است. ممکن است. ممکن است. ممکن فرستاده رسول فرستاده ممکن فرستاده بخونیم یاد بگیریم انشاءالله از اینکه مزفرفات مردم رو گوش بکنیم که هر هرچی میگره اگه گفت تو تلویزیون رو گرفتین شما ممکن مم... گفتم مم... گفتن متولد نشده میگیم اینه بقیه یک آخودو تو ها و ببینیم چی میگیم به مردم که دارین صحبت میکنین شما مشاله تلویزیون گرفتین با مردم صحبت میکنین یه مرکزی هستین شما یه آدم تحصیل کرده هستین یا چیزایی میگن که هیچ پای و اساسی نداره. قربان شما، ممکن استون خواهش کنم یه دقیقه زبون بدهم بگیرید بندم جواب بدم؟ آره جانم بفرمایید. اون آیه مریم رو بخونید ببینم عیسی کجا به دنیا اومده. اوکی میگه سوره 19 از آیه 22 بسم الله رحمه میگه هنگامی که او را حامل بود به مکان دورستی کنارو گرفت. خب. بعد حمل اون نزدیک تنه درخت خرمایی انجام گرفت یعنی مریم گفت من بسیار خجالت زدم ای کاش مرده بودم قبل خوب. از اینکه این, این پیشا و کاملا فراموش شده. خیلی کودک او را از زیرش نه داد، می گفت اندوکین نباش. خب یعنی کودک یه روز صدا کرده حرف زده است. نه من کای ندارم. نه حفصاده قربون شما. بنده نمیتونم این چیزا رو قبول کنم. بله. عرض کنم که آن که سنت بود در این شب تار خوردن هندوانه است و انار زان که این هر دو سرخ و گلفامند میوه للفام ایامند هر که او راه مهر را سپرد شب یلدا از این دو میوه خورد مه پیوند مردمان و خداست مهر پیمان مردمی و وفا است مهر نیرو و نور و آزادی است. مهر پاکی و نیکی و شادی است فرمایید ا بانوای جناب دکتر انقطاوس صدا هست بله من هستم درود بر شما دروت بر شما جناب انقطاع شهاده من که با شما صحبت کنم خیلی سپاسکوزار سپاس از این برنامه بسیار روزتان چه زحمتی میکشید در راقته با زنده نگه داشتن فرهنگ ایران باستان ساعدی که من دارم جناب انقطاع میترا اسم میترا ایرانیان برای زن میگذارم برای بانوان برای دختر میگذارن آیا خود میترا محنس بوده مزکر بل. سال یک سال دو تاریخ ظهور ایشان آیا مشخص چند سال بعد از تاش بزرگ بوده و محل زهور، این ظهور در کدوم نواهی بوده این ستا اگر داشتید باید... لطفاً خواهش می‌کنم قطع نکنید شما کی این برنامه رو شروع کردید بشنیدم تقریبا یک 5 6 دقیقه, آه، دقیقه آه، همه, همه اینا رو بنده, بنده گفتم بله تمام اینا رو بنده گفتم همه اینهایی که شما پرسیدید گفتم اولا برخی از بیتو اسلام معتقدند میثاد و جنسه بوده اینا رو گفتم دوباره برای شما میگم بس برخی معتقدن نخل مرد بوده و برخی میگن نخل زن بوده و این هم هنوز معلوم نیست بعدم از چه زمانی بوده که هم اکنون گفتم در سا در آغاز سلسله هخامنشی میترای آدمی صورت پیدا شد ما دو تا میترایست داریم میترایست به پیش از زرتوشت و میترایست به پس از زرتوشت باز هم اینو اول برنامه گفتم که زرتوش چون نمیتوانست با میترا ایسایی که قبل از او بودن به جنگ و رو از بین ببره آمد قبول کرد که میترا هست ولی گفت فرشته اعظم خدا نیست در آسمان یه خدا بیشتر نباید باشه آورد گوزش بغالدا سهرومزدا وقتی زرتوش در گذشت و مدتی گذشت دوباره اندیشه میترائس بلند شد این بار گفتند که فرشته اناهیتا پسری زایید و به نام میترا اسمش و بعد هم این در 25 سالگی دینش آشکار کرده. این در 65 سالگی هم در واضشته و بقیه مسئله همه اینا رو بنده عرض کردم قبلا خیلی متشکر بدرود بدرود الا بفرمایید از جوابش الا بفرمایید درود بر شما تلویزیون تلویزیون تون تل... نه نه تلویزیون ابلند خانم تلویزیون تون یواش کنی اوکی من تلویزیونم رو یواشه بله جواب اونمسقاهایی که دادید گفتی چطور بچه دنیا یه روز دنیا آمده حد میزنه خوشم اودده خیلی وقتت می گفت. نه دیگه شما مهانت نکنم من خواهشم اینه اگه یکی میاد اینشون هم اومدن گفتن بهله یه خود سواد داشته باشه یه خود فران داشته باشین راستم میگم ممکنه هرچی یادم به بازم نادانه ولی هیچ وقت به هم دیگه ا اینجا یه میز گرده در حقیقت هرکس سیبیو نظرششون میده ایشون گفتن‌ها، درش گفتن من نمیتونم قبول کنم. بچه‌ای که الان به دنیا میاد حرف بزنه من نمیتونم قبول کنم. الان بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. اصلا من خیلی با شما دعای خوبی تا خیلی سپاسگزارم. می‌خواستم قرار بوده هفته شما ساعت 400 تایید کنم اصلا یه مشکلی هستم؟ بله بله. می‌خواستم بگم که ما که که بزرگ انجیل ما که در آخر به دنیا بله بله هیچ هم که توی یه روزگیش حرف بدنه بله هیچ وقت نشد <تصفح> این آقا که که رو قبول ندارن و کتاب خودش نترم نه به مذیرم کتاب رو دروغ میکنن و کتاب خودشون میکنن بله خیلی بود خیلی سپاس گذارم که میگم که من به قرآن اونجا کنید مقصودم مسیحیان میگم ای بس شما قرآن هم قبول نداری؟ الان بفرمایید سلام آقا ینگتو من دو... یک سوالی داشتم خواهش میکنم قرآن خواهش میکنم که ای کشور ایران از چه زمانی به نام ایران شناخته میشد؟ والله می می این به یه مربوط نیست ولی جوابتونو میدم سوالو من خیلی وقت داشتم من دست کم این پرسش رو من از روزی که پای دوربین 12 سال پیش تا حالا 289 بار من اینو گفتم اگه ممکنه برسی و این بارم بزفرمه. میگم ولی خیلی فشرده میگم پس از تلویزیون گوش بدی حالا خواهی ایران از زمانی که تاریخ حسن نشون نداده ایران شناخته شده بوده و در اوستا که یکی از کهانترین کتاب های مانده از قدیم تا حالا ایران و ایران ایرا نام گفتن ائرا نام یعنی سرزمین آریاها بعد میایم جلوتر در زمان ساسانیان میبینیم میگن ایران ویج یعنی نژاد ایرانی بعد میایم جلوتر میبینیم فردوسی در شاهنامه که 1100 سال پیش نوشته 600 بار نام ایران رو آورده 600 بار چون ایران نباشد تن من مباد در این بوم و بر زنده یک تن مباد از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدند در میان نه ایران و نه ترک و تازی بابد سخنها به کردار بازی بابد و همینطور همی ایران میگه باز میانیم میبینیم فروخی سیستانی راجب ایران گفته رودکی راجب ایران گفته اونصوری درباره ایران گفته باز هم بیاییم جلوتر به زمان نادرشاه ها میرسیم میبینیم اه نادرشا ها اردوش و ایران آباد یه اردوی دیگه شون که در قفقاس همه تا اون گرفتن مردن اسمی ایران خراب ولی لغت ایران آورد باز بیاییم می جلوتر میبینیم که سفیر فتلی شاه حسین علی بیک یه پرچمی با خودش برد به درباره روسیه و بعد به اروپا رفت اون تو نوشته فت علی شهر ترک کشور خدای ایران باز اسم ایران آورده بعد میهن میبینیم زمان ناصردی شای اسکناس شاب شد روش نوشته بانک شاهنشاهی ایران بعد میبینیم تمره زمان ناصردی شای و محمد شای و ببخشی ناصردی شای و مزفدی شای و احمدشاه ها همه همه ممالک محروسه ایران مملکت در اون موقع یعنی استان ممالک محروسه ایران اینا همش ایران بوده چطور شدی؟ یه اومدن با زمان رضا شما ایران شدی؟ تنها یک مورده وقتی که ایرانی ها به یونان حمله کردن در زمان خشای آرشا چون کشتی های ایرانی کشتی هایی که حمله بیکردن از ایران رفتن به طرف یونان از خلیج فارس رفتن اونجا یونها گفتن اینا پرسیز هستن یعنی از خلیج فارس اومده بنابراین پرس در اونجا به جای ایران گفته شد تو اروپا به خودشون مربوط به باچه خود آلمانی ها آلمان ها به خودشون میگن دوشلند انگلیس ها میگن جرمنی فرانسوی ها میگن آلمان خودشون میگن دوشلند اینجا به همینطور شد تمام اروپا گفتن پرس یا پارس رضاشا گفت اگه از این به بعد ما رو در وزارت خارجه سفارت خونه ها بعدا نوشتن pers بگید ایران بنویسن ما ایرانی حالا اینم دلایلی داشت برای که با هیتلر خیلی صمیمی بود هیتلر نژاد آریا داشت اینم میخواست اسم ایران همیشه در اروپا هم ایران بمونه اومدن این کار کردن یکی دو ستا کشور گوش نکردن ولی بیشتر گوش کردم. رضاشا گفت اون دو کشوری که دوباره می‌نوشتن ایران جوابشونو رو ندید. تا بینیم سن،, سن پارس رو ندید تا بینیم سن ایران و این هم درست شد کلش امیدوارم دیگه ب... از این فشهده تر میتونم بگم با مستندتر از این جناب شهرتی قربان موسیقی داری؟ الان ب... بریم یا بعد خیلی خوب برنامان بریم بله انام بفرمایید سلام دکتور انگتو درود بر شما لوطاشان ببخشید من یه سوالی داشتم از البته اصلا مربوط به شرعیاتا نمیشه ولی چون یک آمریکایی از من سوال کرد و من جوابش نمیدستم خیلی شرمنده شدم دوست داشتم که جوابشو بدونم و الان بهتره فرصتی باشه که طلاشان بپرسم اگه لطف کنید مؤدب کن که علاقه که من دیگه شرمنده آمریکایی‌ها نشم من پرسیدم که سال سفر ما چطور شروع شده یعنی سال هجری شمسی ما بله. ما سال یک چی بوده که ما الان 1300 هستیم؟ بله اون, س... اون سالی که اون سالی که پیغمبر محمد از مکه رفت به مدینه شد سال 1 هجری خورشیدی و قمری خورشیدی فرق می‌کنه با اون بله برای اینکه خورشیدی 11 روز بلندتره قمری 11 روز کوتاه‌تره بنابراین در یک لوله اگر زمان رو از زمان هجرت تا الان حساب کنید اون سال دراستره کمتر جا می‌گیره اون سال کوتاه‌تره بیشتر جا می‌گیره هر دو شجرت پیغمبره هر دو شجرت محمده. منطقه‌ای که ما ایرانیات شده بوده قبل از اون سالهای دیگه بوده، حسین جلالیم گرفتم. اما در هر زمانی ما این بیک بسیار بزرگی داره زر... ها میگفتن، اونای که اومدن تاریخ ها رو نوشتن همه جور چیز گفتن ماهان غیر از این بوده ماه هایی که الان ما میگیم این نبوده اینا هم در زمان رزاشا فرورد این رو اردیبشت و خورداد اینا رو گذاشتن ولی اینی که میگید مبدع چی بوده مبدع هجری بوده خیلی ممنون، متکرم امیدوارم دیگه پرسش دیگه اگه امریکایی ها کردن از اون برد بفرمایید؟ بله من میخواستم یک صحبتی بکنم خواهش میکنم بفرمه راجب آقای انقطاع من انقطاع هستم درود بر شما بله میخواستم راجب اون آقایی که زنگ زدن و اطلاعات میخواستم راجب مسیح بدن بله. در موقعی که مسیح به دنیا آمده بود قرآنی وجود نداشت اصلا هیچ تمام قرآن از درست شده از قلط های خود قرآن و نه ببینید شما نظر خودتون رو ا... ا... نه شما نظرتون رو راجع به ایسا بگید اگه قرآنی نبوده انجیلی هم نبوده اون موقع نه قرآن نبوده اون موقع انجیل هم نبوده برای که تازه عیسی به دنیا اومده بوده برابری اونم نبوده علی. ولی ما نظریه که میدیم راجبه مسیح نظری است که مسیحی ها میدن چون مسیحی ها میگن این داهغول به دنیا اومده و در من در ایتالیا در روم بودم روز اول کریسمس مجسمه اصلا بین انسان یک فضای بزرگ رو میگیرن و تویله درست میکنن نگاه و گوسفند و اینا رو میذارن روی زمین و کامی ریزن و مجسمه دو. برای که عیسا رو در جو به دنیا اومده حالا حالا به هر حال عقیده اونها هست با که اونها خودشون دارن میگن که باید قبول کنیم که حالا اصلا دعوان ها میگید نیست و نیست نه درست میگم ولی قرآن و تمام چیزهایی که از انجیل و تورا تو گرفته غلط اشتباه به مهدم داره میگه خواهش میکنم مرسی خیلی سپاس گذارم اله بفرمایید این آخرین تلفنی است که من میگیرم بفرمایید در پیشگاهتون هست خواهش من جناب هندطا خسته نباشید. خیلی ممنون. خواهش من استاد گرامی میخواستم خدمتتون عرض کنم در رابطه با صحبتی که این جناب کردن باوکن هر کس اشتباه کرده باشه بله، بله. از این مسئله شما مساله به اصطلاح ببینید همین حضرت ابراهیم که میگن هم اسمایل داشته هم اسحاق بله. در کتاب مثل به انجیل و تورات گفتن که اسحاقو ایشون می‌خاسته قربانی کنه در حالی بله قرآن میگن که یعقوب می‌خاسته قربانی کنه بله بله خلاف به این بزرگی رو مردم نمیگیرن بعد میان مثلا سر چیزای کوچیک مثل که کوشا به دنیا اومده سر بله بله اون با هم بحث میکنن بله حالا من از از میشم اگه شما توضیح بیشتری خواهش میکنم خواهش میکنم همین میگم میکن من زیاد وارد اون جزیات نمیشم اگر آدم وارد جزیات بشه مسئله خود انحرافی میشه و من نمیخوام که وارد حمله به کیش ها بشم چون هر کسی کیش خودشو قبول داره خیلی خوب دنبالش میره. اما خداوند یه خمیری در مغز ما گذاشته که این موجزه خداوند با این خمیرمانندی که در مغز شماست برید حقیقت رو کشف کنید برید ببینید آیا همچیزی ممکنه میگن علی پنجاه سال پوز سال بعد از خودشم میدونست میگم آقا مسجد داشت میرم با کشنش نمیدونست چطور چار سال به آیندش میدونست که گفته از نسل دوازده من یکی میاد امام زمانه ما اینی میگیم ما میگیم خداوند یک ناموسی داره ناموس در زبان فارسی یعنی قاعده و قانون خلاف اون رفتار نمیکنه. وقتی یه ب... تو به دنیا میاد سخن گفتن بلد نیست از کجا این سخن گفتن رو یاد گرفت؟ از توش مادرش گوشی گذاشته بود حرف میتونه بزنه اصلا هوا و داخل ریهش میشد که بتونه حرف بزنه. خودمیگه به کی فکر کنی؟ همین سنگ رو مثلا علی نيزشو گذاشت سه متر تو سنگ فرو. خب مت الماس هم باشه اونجوری سوراخ نمیکنه. اصلا چه اصراری دارید دینه بگید علی شجاع بود خب شجاع بوده در جنگ پیش بیات ها پیش بیافت این چیزایی که عقل قبول میکنه حالا دروغ یا راست بگید خب میتونید دفاع کنید ولی نه این مسائلی که بیانی این اینا بران دروغ بگید و بگید این طور شده این طور شده این طور شده ارزش کار کم میشه ارزش دین میاد پایین بران آقای شهادتی اصلا دیگه شروع کرده زدن موسیقی که یعنی من کارم تموم شد با سپاس از همه بینندگان از خوشحالم که این وقت شب همه دیدارن و گوش میدن تلویزیون پارس رو و همه گیر به خدای بزرگ میسپارم روز و روزگاه بر شما خوش پس فردا چارشنبه در زمینه مرگ آیت الله منتظری منتظری و کارهایی رو که آقای خمینی کرد و ایشون جلوشی خواست بگیره سخن خواهیم گفت بعد نیستون برنامه رو گوش بدید شب و رو خوش.